اصل دوم اولین انصر کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش میآید. رالف والدو امرسون اجازه دهید برای شما تعریف کنم که با شروع فردای آن شب ناامیدی بعد از اینکه شرکت انرژی خورشیدیام ورشکست شد و آنها ماشین زیبای من را با یدکش بردند چه اتفاقی افتاد. من هیچ کونه پسنداز و ای نداشتم که بتوانم کارم را دوباره شروع کنم. تنها گزینه پیش رویم این بود که برای شخص دیگری کار کنم. بنابراین کاری را انجام دادم که جورج دلروبا در آن لحظاتی که چمنهای زمین گلف را کوتاه می کرد، هرگز تصور نمی کرد. من پا به حرفه فروش گذاشتم. من از فروش متنفر بودم. اگر میخواستم کاری را شروع کنم، فروش آخرین چیزی بود که به آن فکر میکردم. وقتی به شرکت تگزاس اینسترومنت رفتم، تصور میکردم که در بخش مدیریت مشغول به کار میشوم. اما آنها اعتقاد دیگری داشتند و گفتند اگر میخواهی جزء مدیران باشی، باید از بخش فروش شروع کنی. خیلی ترسیده بودم. مطلقاً هیچ چیزی درباره فروش نمیدانستم و این موضوع من را به وحشت میانداخت. من هیچ کنن استعداد ذاتی برای این کار نداشتم. من صبوری لازم برای این کار را نداشتم و مثل بعضی از افراد چرب زبان مادرزاد نبودم. اما آنها فقط برای بخش فروش نیرو می‌خواستند و چاره ای نداشتم. اما با گذشت زمان به این کار عادت کردم. سپس اتفاقی باور نکردنی رخ داد. با گذشت زمان، حرفه فروش زندگی من را متحول کرد. البته نه خود فرایند فروش، بلکه آموزش ها و تمریناتی که همراه آن بود. در ضمن گذراندن انواع دوره ها و یادگیری اصول مرتبط با فروش، من در معرض اطلاعات ارزشمند زیادی قرار گرفته بودم. اما حتی خود این اطلاعات نبود که زندگیم را متحول کرد. در حقیقت، آنچه من عاقبت به آن پی بردم، چیزی بود که در تمامی آن آموزش‌ها و اطلاعات از آن قفلت شده بود. چیزی که حتی بسیار با ارزشتر از همه آن اطلاعات ارزشمند بود. این همان چیزی بود که من آن را اولین انصر می نامم. بعد از آن شب ناامیدی و به دلیل نداشتن هیچ گونه پسنداز و سرمایه‌ای در یک شرکت بازاریابی مستقیم مشغول به کار شدم. مدتی بعد بخش فروش شرکت را متحول کردم و پس از آن چندین زمینه کسب و کار موفق دیگر برای شرکت ایجاد کردم که سرانجام به مقام مدیرعاملی یکی از آنها منصوب شدم بر اساس تجربه‌هایی که به دست آورده بودم یک شرکت آموزشی درباره پیشرفت شخصی به نام شبکه مردم ایجاد کردم در آن شرکت چیزی در حدود هزار برنامه تلویزیونی با موضوعات مختلف از مسائل مالی گرفته تا روابط اجتماعی تولید کردیم و این فرصت را داشتیم که با برخی از بزرگترین نویسندگان، متفکران و رهبران اندیشمند دوران همکاری کنیم. به خاطر موقعیتی که داشتم توانستم در مرکز جنبش و نهضت پیشرفت شخصی باشم و وقتم را با برخی از شخصیت‌های افسانه این زمینه سپری کنم. افرادی مانند جن میلر، یکی از مدیر برنامه های مشهور نویسندگان پیشرفت شخصی، دیک سنایدر، مدیرعامل شرکت سیمون انسکاستر و بزرگترین ناشر کتاب پیشرفت شخصی، جیمی بوون، تهیه کننده موسیقی و اپراوین فری. در تیان سالها، برنامه های بسیار زیادی درباره این واقعیت که موفقیت در همه موقعیت ها و شرایط امکان پذیر است، تهیه و تولید کردیم. هزاران نفر از آن اطلاعات استفاده کردند و زندگیشان را اندکی یا حتی بسیار زیاد بهبود بخشیدند. با این حال، به نظر می رسید آن اطلاعات فوقالعاده با ارزش و بینش بخش برای بسیاری از افراد به ندرت تأثیری داشته است یا ابدا هیچ گونه تأثیری نداشت. این موضوع برایم گیج کننده بود. خودم از این اطلاعات چیزهای بسیار زیادی یاد گرفته بودم و منفعت بسیاری به دست آورده بودم. این اصول متحول کننده زندگی بودند، با این حال هنوز هم می دیدم خیلی از افرادی که مشتاقانه تمام آنها را می بینند و می خانند. منفعت زیادی از آنها کسب نمی کنند. در ضمن آن تجربه به یک درک هوشیارانه رسیدم. همه چیزهایی که این مربیان و معلمان بزرگ در بارش صحبت می کردند، عملی و کاربردی بودند، اما موثر واقع نمی شدند. مردم تلاش می تا از آنها پیروی کنند، اما وقتی آن جهش کوانتومی که به دنبالش بودند، در سی، شست یا 90 روز اول محقق نمی از انجام دادن آن کارها دست می کشیدند. مهم نیست که چقدر اطلاعات وجود دارد یا اینکه آن اطلاعات چقدر خوب و مفید هستند. اگر شخصی که این اطلاعات را مصرف می کند، پردازشگر درست نداشته باشد، موفقیت باز هم از چنگ او فرار می کند. پردازشگری که این قابلیت را به آنها میدهد که آن اطلاعات را به صورت اثر بخشی به کار ببندند این موضوع شبیه خوردن بهترین غذای دنیا بدون داشتن دستگاه گوارش مناسب برای هضم و جذب کردن آن است ممکن است اطلاعات شگفتانگیز دقیق و خارق داشته باشین که موفقیت آمیز بودن به کارگیریشان اثبات شده باشد اما این اطلاعات خیلی ساده از بیخ گوشتان می‌گذرد و شما را همانقدر که قبل از مصرفشان ضعیف و مشتاق بودید ترک می‌گویند. من دیده‌ام که این موضوع صدها و حتی هزاران بار اتفاق افتاده است. این موضوع به دلیل تلاش کم یا فقدان اشتیاق نبوده است. اگر پیش از این به شما گفتند، اگر چیزی را با تمام وجود بخواهید آن را به دست میآورید من اینجا هستم که شما را از دام این تفکر رها کنم و بگویم که این موضوع به هیچ وجه حقیقت ندارد. فقط خواستن چیزی ضرورتا آن را برای شما محقق نمی کند، حتی زمانی که خواستتان را با تلاش زیاد و سخت کوشی نیز ترکیب کنید باز هم به آن نمیرسید. میتوانید هر آنچه را می‌خواهید با تمام وجود طلب کنید و تا آخرین توانتان نیز تلاش کنید اما باز هم اتفاقی نمی‌افتد نه بدون اولین انصر. چرا رژیم‌های غذایی مؤثر واقع نمی‌شوند در طی چند دهه اخیر با هزاران نفر از مردم با پیش زمینه های بسیار مختلف و شغل‌های بسیار متفاوت همکاری کردم از ها و وکلا گرفته تا راننده های اتوبوس و کارگران ساده همه آنها فرصت‌های دقیقاً یکسان و مشابهی داشتند برخی از این افراد میلیونر شدند و تعداد بیشتری به یک زندگی خوب و قابل اطمینان دست پیدا کردند اما اکثر آنها با همان موقعیت‌ها و فرصت‌های دقیقاً یکسان به هیچ موفقیت یا پیشرفتی دست پیدا نکردند چرا این موضوع هیچ ارتباطی به شانس ندارد، به موقعیت شناسی یا تقدیر نیز ارتباطی ندارد، حتی هیچ ارتباطی با هوش، مهارتها، استعدادها و چیزهای از این دست نیز ندارد. در طی همین سالها من در شرکت‌های مختلف و خطوط تولید گوناگون که در هنگام شروع کار تقریبا هیچ چیزی درباره کارشان نمیدانستم، در کشورهای مختلف با زبانهای متفاوت که به زبانشان صحبت نکردم و هنوز هم صحبت نمی‌کنم، به سطوح بسیار بالایی از موفقیت رسیدم. از قبل هم به یاد دارید که این موضوع به دلیل استعداد ذاتی من در فروش نبود، زیرا چنین استعدادی نداشتم. واقعیت این است که کارهایی که من انجام دادم چیزهای شگرف و شگفتانگیزی نبودند. در حقیقت موضوع کاملا برعکس است. در هر مورد من هر بار دقیقا همان کار مشابه را انجام می دادم و از استراتژیهای بسیار سادهی استفاده می کردم که از کارهای بسیار آسانی تشکیل شده بود. به قدری آسان که خندتان می گیرد. استراتژیهایی که از آنها استفاده می کردم و البته هیچ کدامشان را خودم خلق نکرده بودم به قدری آسان بودند که اگر 20 دقیقه کنار هم بنشینیم کاملا به شما توضیح می دهم که برای خلق چهار سازمان چند میلیون دلاری مختلف چه کارهایی انجام دادم و به شما آموزش می دهم که چگونه شما نیز همان کار را انجام دهید فقط در 20 دقیقه و احتمال دارد که این اطلاعات برای شما موثر واقع نشوند. چرا؟ زیرا موضوع نحوه انجام دادن این کارها نیست. چرا که اگر به طور اساسی شیوه تفکر شما را تغییر ندهیم، بلافاصله پس از ترک کردن اتاق، چیزهایی را که به شما گفتم، بازآرایی خواهید کرد. و حتی هنگامی که شب به رخت خواب می روید، آن اطلاعات را به گونه دیگر خلق می کنید و در صبح آنها را به مسابه همان اطلاعاتی که من به شما داده بودم در نظر می گیرید. به همین دلیل است که رژیمهای غذایی مؤثر واقع نمی شوند. به همین دلیل است که عضویت در باشگاه های ورزشی شما را به صورت جادویی خوشندام نمی کند، زیرا رژیم غذایی عضویت در باشگاه های ورزشی و طرحهای کسب و کار هوشمندانه و قابل اطمینان بدون برتری خفیف شبیه نهالی هستند که به آب دسترسی ندارد. در همه جای دنیا مردم به دنبال فرمول یا راز موفقیت یا راهی برای بهبود زندگیشان هستند. همانطور که در طی سالهای فعالیتم در شبکه مردم پیبردم، امروز نسبت به هر زمان دیگری اطلاعات بهتر و قابل اطمینانتری تری درباره چگون انجام دادن این کارها وجود دارد. اگر شما هم یکی از میلیونها نفری هستید که به دنبال پاسخی سریح و سریع به بزرگترین سؤالهای زندگی هستید میتوانید همین حالا دست از جستجو کردن بردارید. موضوع چگونه انجام دادن این کارها نیست؟ اگر چگونه انجام دادن این کارها پاسخ شما بود، شما به موفقیت دست پیدا می کردید. اینکه شما چطور این چگونه ها را انجام می دهید، به مراتب بسیار مهمتر است. اگر دسترسی به اطلاعات درست جواب ما بود، همه ما ثروتمند سالم، خوشحال و راضی بودیم. در حالی که بسیاری از ما اینگونه نیستیم. چرا؟ زیرا جواب صرفا جواب است و کاری انجام نمی دهد. دانستن این جواب به خودی خود کاری نمی و خود به خود مشکلات زندگی را حل نمی کند. جواب فقط اطلاعات محض است. البته این گونه نیست که آن کتاب هایی که به چگونه انجام دادن کارها می پردازند ارزشمند نباشند. آنها ارزشمندند. در حقیقت برخی از این کتاب بسیار فوقالعاده و شگفتانگیزند و من در همین کتاب برخی از آنها را به شما معرفی می کنم. منظورم این است که یک کتاب دیگر چیزی نیست که شما به آن نیاز دارید. در واقع چیزی نیست که هیچ کدام از ما به آن نیاز داشته باشیم. ما پیش از این به اندازه کافی از این کتاب ها داشته ایم، شاید بیش از حد نیاز. چیزی که شما برای متحول کردن زندگیتان نیاز دارید مسلما اطلاعات بیشتر نیست. به علاوه همه ما بسیار متفاوت با یکدیگر هستیم نحوه انجام دادن کارهایی که من را به نتیجه دل خواهم میرساند ممکن است همانی نباشد که برای شما مناسب است هرچقدر که بخواهیم روی کردی خاص دقیق و قابل اندازهگیری به زندگی عشق و شادی داشته باشیم باز هم در این حوزه‌ها از روی شانس و اقبال گام بر میداریم چرا که در زندگی برای هیچ چیزی یک شیوه فراگیر و مناسب برای همه وجود ندارد با این حال، یک انصر اسرارآمیز وجود دارد. انصری که وقتی آن را به چنگ آورید، موجب می شود که آن جوابها را پیدا کنید، به کار ببندید، با آنها زندگی کنید و به نتایج مورد نظرتان دست پیدا کنید. انصر اسرارآمیزی که به شما اجازه می دهد، در هر جنبه ای از زندگی که می خواهید به موفقیتی پایدار برسید. انصر گم شده وقت آن رسیده که پرده را کنار بزنم و این راز را با شما در میان بگذارم. آماده اید؟ این انصر اسرارآمیز فلسفه شماست. قبل از هر گونه عملی بدانید که من از یک چیز مبهم ذهنی و یک سیستم فکری پیچیده حرف نمیزنم. من قطعا درباره نوعی تلقین به خود یا تحقق بخشیدن به غیر ممکنها از طریق قدرت مرموز جاذبه یا هر نوع دیگری از جادو و جنبل صحبت نمی کنم. و مهمتر از همه اینها چیزی که من درباره صحبت می کنم، انجام دادنش به هیچ وجه سخت نیست. منظورم از فلسفه شما این است که طرز فکرتان درباره کارهای ساده روزمره را تغییر دهید. پس از آنکه این کار را انجام دهید، گام هایی را برمیدارید که شما را به نحوه انجام دادن کارهای مورد نیازتان هدایت می کند. اجازه دهید این گونه بگویم. اگر شما طرز فکرتان را درباره این کارهای ساده روزمره تغییر ندهید، در این صورت هیچ مقداری از آن چگونه انجام دادنها نه شما را به جایی خواهند رساند و نه هیچ گونه راه حل واقعی در اختیارتان قرار می دهند. زیرا دانستن چگون انجام دادن کارها مهم نیست بلکه چطور انجام دادن آن چگونه هاست که اهمیت دارد دلیل اینکه رژیم های غذایی خداموزی، برنامه برنامه‌های کاهش وزن و غیره برای بیشتر مردم مفید واقع نمی‌شوند همان دلیلی است که بسیاری از کتابها ها و های خداموز چگونه انجام دادن کارها نیز برای بیشتر مردم کارساز نیستند این موضوع به این دلیل نیست که آن اقدامات اشتباه هستند، بلکه خیلی ساده به این دلیل است که مردم در انجام دادن آنها مداومت و پافشاری لازم را ندارند. تمرکز بر روی اقدامات یعنی کارهایی که باید انجام شوند و چگونگی انجام دادنشان کافی نیست. چرا که این نگرش پشت انجام دادن آن اقدامات است که آنها را در مسیر درست نگه می‌دارد. آها! پس همه آن چه لازم دارم تغییر و اصلاح نگرشم است. متاسفانه نه، به همین سادگی ها هم نیست. شما می توانید نگرشتان را تحت تأثیر الهامات، گوش سپردن به سخنان یک سخنران بزرگ، خواندن یک داستان الهام بخش یا مکالمه با دوستانتان اصلاح کنید. هر یک از اینها می توانند موجب شوند که در مسیر درست حرکت کنید. تا اینجا همه چیز خیلی خوب به نظر می رسد، مشکل اینجا که این احساسات دوام پیدا نمی کنند. آیا آن نمودار سینوسی فصل اول را یادتان هست ؟ شما ممکن است با آن داستان متعالی کننده یا آن مکالمه الهام بخش تحت تاثیر قرار بگیرید اما نمی توانید آن احساسات را ثابت نگه دارید و حیجانات آن لحظه را حفظ کنید. هیجانات به سرعت باد تغییر می کنند و شما نمی توانید جلو تغییرشان را بگیرید هیچ کسی نمیتواند آنها به حرکتشان ادامه میدهند به همین دلیل است که به آنها حیجانات گفته می شود شما نمی توانید هیجانات را به خودتان دیکته کنید مهم نیست چقدر به خودتان بگویید که احساس مثبتی درباره این کار یا آن کار دارید چه می شود اگر این تلقین را انجام ندهید امروز، شما از رسیدن به وزن متعادل و خوشاندام شدن هیجان زده میشوید و احساس می کنید که دویدن بیست دقیقه ایتان بر روی تردمیل را دوست دارید. بسیار عالی است. اما چه می شود اگر فردا فقط احساس کنید که دوست ندارید این کار را انجام دهید؟ برای پیدا کردن مسیرتان به سوی موفقیت باید یک گام بیشتر بردارید. این گام درک شما از نگرش است که در پس اقداماتتان وجود دارد. این همان فلسفه است، همان انصر گم شده، انصر اسرارآمیز. همان اولین عنصر بله شما باید هم اقدامات لازم برای برنده شدن را بشناسید و هم نگرش‌های لازم برای برنده شدن را داشته باشید اما چیزی که همه اینها را به وجود می‌آورد و در مسیر درست نگه می‌دارد فلسفه شماست فلسفه شما متشکل از های شما نحوه استفاده کردن از آن ها و نحوه اثرگذاری آنها بر کارهایی است که انجام می‌دهید اینکه درباره کارهای ساده روزمره چگونه می این کتاب در همین باره است یک فلسفه مثبت به یک نگرش مثبت منجر می شود که آن هم به اقدامات مثبت تبدیل خواهد شد و نتایج مثبتی به بار می آورد که سرانجام به یک سبک زندگی مثبت منجر می شود یک فلسفه منفی به یک نگرش منفی تبدیل می شود که آن نیز خود به اقدامات منفی منجر می شود و نتایج منفی به بار می آورد و در نتیجه به یک سبک زندگی منفی تبدیل می شود. حکمت زندگی برای تغییر فلسفتان، مجبور نیستید به دانشگاه بروید، زبان یونانی یاد بگیرید یا کتاب‌های قطور با پاراگراف‌های طولانی از نویسندگان آلمانی قرن 19 بخوانید. فلسفه زندگی چیز بسیار ساده است، آنقدر ساده و ابتدایی که یک کودک شش ساله هم می‌تواند آن را درک کند. این مثالی از یک فلسفه زندگی است. سخنی از رالف والدو امرسون که در مقاله در باره قرامت نوشته بود. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می آید. این جمله بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است. نوعی از حکمت است که می توانید عملاً آن را در زندگی روزمرتان به کار ببندید. شرکت نایک نیز جمله مشابهی می گوید فقط با کلماتی کمتر. فقط انجامش بده. من جمله امرسون را بیشتر دوست دارم و بعدا وقتی که درباره بستن برتری خفیف در زندگیتان صحبت می کنیم، شما نیز از آن استفاده خواهید کرد. دو نوع نگرش مرسوم وجود دارد: نگرش استحقاقی و نگرش ارزش مهور. نگرش استحقاقی می گوید، اخیراً چه کاری برای من انجام داده ای؟ نگرش ارزش مهوار می گوید، برای کمک به شما چه کاری می توانم انجام دهم؟ نگرش استحقاقی میگوید پول بیشتری به من بده و سپس شاید سخت کوشانتر کار کنم. نگرش ارزش محور میگوید من سخت کوشانتر کار میکنم و سپس انتظار دارم که پول بیشتری به من بدهی. کدام یک از این نگرش ها با فلسفه امرسون همخوانی دارد؟ فلسفه شما متشکل از دانسته های شما، نحوه استفاده کردن از آن دانسته ها و نحوه اثرگذاری آنها بر کارهایی است که انجام میدهید. شما می توانید با نگاه به اقدامات هر کسی و از طریق نگرش هایی که در پس آن اقدامات هست به منبعشان یعنی فلسفه ای که در پس آن نگرش هاست پی ببرید اگر به من بگویید که یک شخص چه کارهایی انجام می دهد من به شما میگویم که فلسفه ای او چیست این مثال دیگری از فلسفه زندگی است که متعلق به توماس جی واتسون بنیانگذار IBM آی است فرمول موفقیت واقعا ساده است نرخ شکست هایتان را دو برابر کنید این روزها به ما این گونه آموزش داده نمی شود که کلید موفقیت دو برابر کردن نرخ شکست های ما نست در عوض به ما آموزش می دهند که از شکست خوردن همچون تاون تا دوری کنیم احتمالا این اصطلاح را شنیده اید که شکست یک گزینه نیست عجب واقعا؟ خوب. اما بررسی واقعیت نشان می‌دهد که بهتر از شکست یکی از گزینه‌ها باشد. زیرا چه شما آن را یک گزینه در نظر بگیرید، چه نگیرید، اتفاق خواهد افتاد. اگر شما با این فلسفه زندگی کنید که شکست یک گزینه نیست، هرگز هیچگونه فرصت خوبی برای یادگیری به دست نمی آورید. اگر بیبروس با این فلسفه زندگی کرده بود که شکست یک گزینه نیست، من و شما هیچ وقت نام او را نشنیده بودیم. چرا؟ زیرا او در بیسبال نه تنها یک رکورد جهانی برای همرانهایش به جا گذاشت بلکه در استرایک اوت نیز رکورددار بود. مایکل جردن که بسیاری از کارشناسان او را یکی از بزرگترین بسکتبالیست های تاریخ میدانند و شش بار با تیم شیکاگو بورز قهرمان لیگ NBA شد در سال دوم دبیرستان در تیم بسکتبال دبیرستانش پذیرفته نشد چرا که میگفتند قد او خیلی کوتاه است. در طی دو سال بعد قد او ده متر رشد کرد با تمرین زیاد مهارت بازیش را افزایش داد و در مسیر موفقیت قرار گرفت. ابراهام لینکولن در دوران شغلیش سابقه عجیبی از شکست خوردن در انتخابات و ناکامی در مسئولیت‌های دولتی داشت. شکست برای وکیل نازموده ایالت ایلینویز فقط یک گزینه نبود بلکه در واقع ویژگی او بود. اگر این گونه نبود، او هرگز به کاخ سفید راه پیدا نمی کرد و در این صورت چه کسی می داند که اوضاع ایالات متحده امروز چگونه بود یا حتی چیزی به نام ایالات متحده وجود داشت یا نه؟ سخت است که تصور کنیم اگر توماس ادیسون این فلسفه را میپذیرفت پذیرفت که شکست یک گزینه نیست امروز زندگی ما چگونه بود؟ او در اختراع لامپ الکتریکی و در تلاشهایش برای پیدا کردن یک رشته پایدار هزاران روش گوناگون را آزمود که همگی آنها با شکست مواجه شدند. جمله معروف او این است: من شکست نخوردم. من فقط دهها هزار راهی را کشف کردم که به کار نمیآیند. افراد موفق در مسیرشان به سوی اوج بارها تعم شکست را می چشند چرا برندگان بخت آزمایی ها تمام پولشان را از دست میدهند؟ فلسفه شما طرز فکرتان درباره زندگی است یعنی چیزی ورای احساسات و نگرش ها؟ فلسفه شما احساسات و نگرش هایتان را شکل میدهد که آنها نیز اقدامات شما را تعیین می کنند؟ در کل مردم موفقیت را در جاهای اشتباهی جستجو می کنند آنها در جستجوی یک شانس بزرگ هستند، یک جهش کوانتومی شگفتانگیز که همه درباره آن صحبت می کنند. من به آن فلسفه قماربازی می گویم و معتقدم که آنها از طریق این فلسفه هرگز به موفقیت نمیرسند. من تجربه های چشمگیر و شکست‌های بزرگی را داشتم و در تجربه خودم هیچ یک از آنها چه از نوع خوششانسی و چه بدشانسی از طریق جهش‌های کوانتومی یا شانس‌های بزرگ اتفاق نیفتادند. بلکه همه آنها از طریق برتری خفیف رخ دادند. احتمالا داستانهایی را در این باره شنیده که برندگان بخت آزمایی ها تمام پولشان را از دست دادند. این داستانها تخیلی نیستند بلکه واقعا رخ دادند. چاله هایی که مردم بعد از آن پیروزی بزرگ در بخت آزمایی به داخلشان می افتند و گیج کننده اند. این موضوع فقط درباره برندگان بخت آزمایی ها نیست. شما همچنین داستانهایی را درباره ستارگان مشهور سینما خانندگان معروف یا قهرمانان ورزشی شنیده اید که ثروت و مکنت بسیار زیادی به دست آوردند، اما آن را به گونه ای مدیریت کردند که ورشکسته و بدهکار شدهاند. وقتی این داستانها را شنیده احتمالاً احتمالا مانند من با خودتان گفته اید، خدای من نمیدانم آنها چگونه این کار را انجام دادند اما اگر من اینقدر پول داشتم مطمئنم اینطور آن را به باد نمی‌دادم. اما اجازه دهید سوالی از شما بکنم آیا در این باره مطمئن هستید در مقام کسی که به اوج موفقیت رسیده و همه آن را به باد داده است به شما میگویم که شگفت زده میشوید وقتی ببینید چنین چیزی برای شما نیز رخ میدهد. دلیلی وجود دارد که آن برندگان بخت آزمایی ها تمام پولشان را از دست میدهند و آن ستارگان درخشان به نقاط تیره و تار سقوط می کنند. آنها ممکن است به شانسهای بزرگی دست پیدا کرده باشند، اما به برتری خفیف چنگ نزدند. پیروزی موجودی حساب بانکیشان را تغییر داد، اما فلسفشان را نه. هدف این کتاب این است که فلسفه برتری خفیف را به شما معرفی کند و به شما نشان دهد که برتری خفیف چگونه عمل می‌کند. مثال‌های متنوعی از آن را در اختیارتان قرار دهد و به شما یاد دهد چگونه آن را هسته مرکزی دیدگاهتان در مورد جهان قرار دهید و هر روز بر طبق آن زندگی کنید. اگر به دقت نگاه کنید، در سراسر این کتاب عبارتها و جمله‌های بسیار زیادی می‌بینید که در بردارنده این فلسفه هستند. عبارتهایی مانند کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می‌آید و هایی که کمی بعد با آنها روبرو می‌شوید موفقیت تحقق تدریجی یک هدف ارزشمند است افراد موفق کارهایی را انجام می‌دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند در زندگی برای هر چیزی یک توالی طبیعی وجود دارد کاشت، داشت، برداشت این یک پیشنهاد است که می تواند شما از این کتاب را به حد اکثر برساند و به شما کمک می کند که نه فقط آن را گوش دهید بلکه آن را جذب کنید و در زندگیتان به کار ببندید هر بار که به یک جمله بنیادی از فلسفه برتری خفیف رسیدید جایی آن را یادداشت کنید سپس مرتبا برگردید و یادداشت‌های خود را بخوانید. این راهنمای شخصی خودتان برای رسیدن به فلسفه برتری خفیف خواهد شد. در واقع رژیم‌های غذایی مؤثر هستند. شنیدم که مردم برتری خفیف را نوعی نوشداروی سهرامیز توصیف می‌کنند. اما این توصیف درست نیست. برتری خفیف نوشداروی سهرامیز نیست چرا که شما نیازی به نوشداروی سهرامیز ندارید. هیچ نوشداروی سهرامیز یا مسیر میامبری برای موفقیت وجود ندارد. همه یه چیزی که شما نیاز دارید، اطلاعات خوب و درست است که همکنون همه جا در دسترس است و البته یک پردازشگر خوب که به شما اجازه می دهد آن اطلاعات را جذب کنید و به کار ببندید. برتری خفیف همان پردازشگر است. شعارهای بازاریابی تلاش می کنند تا شما را با این وعده ها گمراه کنند که در سه هفته 15 کیلوگرم از وزنتان را کم می کنید یا در حین خواب درآمد کسب می کنید اما به هیچ وجه اینطور نیست ممکن است در ابتدا کمی موفقیت به دست آورید اما نتایجتان پایدار و با دوام نخواهند بود و وقتی این اتفاق بارها و بارها رخ دهد وسوسه میشوید که از آن اطلاعات خوب صرف نظر کنید که در واقع یک فاجعه است چرا که آن اطلاعات می به همراه یک پردازشگر خوب نتایج شگفتانگیزی را را برایتان به ارمغان آورند رژیم های غذایی موثرند عضویت در باشگاه های ورزشی نتیجه می دهد طرح کسب و کار قابل اطمینان می شما را به شخصی ثروتمند مبدل سازد و البته مطالب بسیار زیادی در زمینه پیشرفت شخصی وجود دارد که شما را انسانی شادتر، اثر موفقتر و رضایتمندتر خواهند کرد. البته نه بدون برتری خفیف. کتاب برتری خفیف فقط اطلاعات خوب بیشتر نیست. این کتاب یکی دیگر از آن کتابهای خداموز موفقیت نیست که جدیدترین و بهترین راه های انجام دادن کارها را معرفی کند، شما به اینجور کتاب ها نیازی ندارید. هیچ کسی به آنها نیاز ندارد. همه اطلاعات جدید و بهتر قبل از این نیز در دسترس بودند. سال هاست که در دسترس هستند. این کتاب اطلاعات بیشتر نیست، محرکی است که به شما کمک می کند آن اطلاعات خوب را به کار ببندید. این کتاب انصر گم شده ایست که برای موثر واقع شدن تمامی کتاب های پیشرفت شخصی به آن نیاز دارید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا همه اطلاعاتی را که از کتاب‌های تندرستی، کتاب‌های فروش، کتاب‌های سرمایه گذاری و کتاب‌های نگرش مثبت یاد گرفته اید، به کار ببندید. برتری خفیف همان کتابی است که لازم است به همراه کلاس‌های آمادگی جسمانی، برنامه ریزی شغلی، تحصیلات و یادگیری مهارت‌های جدید آن را یاد بگیرید و از آن یادداشت برداری کنید و یادداشت‌هایتان را بازخانی کنید. کتاب برتری خفیف شما را آماده می کند تا بتوانید تمامی آن اطلاعات، راهنماییها و آموزش های کتابهای دیگر را جذب کنید. شما به کتاب بیشتر در زمینه چگون انجام دادن کارها نیازی ندارید. شما به چیزی نیاز دارید که موجب شود مطالب آن کتاب برای شما موثر واقع شوند. این کتاب به شما کمک میکند تا هر گونه اطلاعاتی را که میخواهید به دست آورید و آن اطلاعات را به زندگی مورد نظرتان تبدیل کنید. این کتاب چیزی است که من آرزو میکردم آن زمانی که در زمین گلف پی بردم که آن طور که دل خواهم است زندگی نمیکنم در دستانم بود. چیزی که آرزو داشتم در آن شبی که اتومبیلم را با یدککش میبردند در دستانم بود. آرزوهای بزرگ شما هرچه باشند من دوست دارم که به آنها دست پیدا کنید و می دانم که می توانید. این اعتقاد قلبی من است و دیدم که بارها این اتفاق رخ داده است. اما شما به جایی برای شروع کردن نیاز دارید. کتاب برتری خفیف همان نقطه شروع است. این کتاب همان اولین انصر است. داستان شخصی از خوانندگان کتاب بیکرفوره، ادموند، ایالت اکلاهاما بعد از مطالعه کتاب برتری خفیف، تصمیم گرفتم این فلسفه ها رو در هر جنبه از زندگیم به کار ببندم. در مقام پدر، یه نسخه از کتاب رو برای فرزندام خریدم و شروع کردم به آموزش حکمت انجام دادن کارهایی که هم انجام دادنشون آسونه و هم انجام ندادنشون. در مقام پزشک نسخه های از کتاب و به بیماران دادم که در تقابل و کشمکش با ناامیدی بودن. من با اونا گفتم که این همون کبسول فلوکسیتینه، اما در قالب کتاب. در مقام نویسنده، اصول برتری خفیف و تو کتابام به کار گرفتم. تو هر نقشی که تو زندگیتون دارین، کاربردی واسه برتری خفیف وجود داره که تفاوتی بسیار شگرف و عمیق پدید میاره. نورس یارمود، ایالت مین من از اصول برتری خفیف برای بهبود وضعیت جسمانیم استفاده کردم. اونم با انجام دادن روزمره فقط یه شنای سوئدی و یه حرکت دراز است و اضافه کردن یه حرکت دیگه در هر روز و رسوندنش به بیش از صد حرکت در هر روز. من از برتری خفیف در پرداخت بدهیهام، هام پس انداز کردن، سرمای و بهبود روابطم با فرزندام کمک گرفتم. نکات مهم اهمیتی ندارد که اطلاعاتتان چقدر خوب و مفید باشند آنها هیچ تأثیر مثبتی در زندگیتان ندارند مگر اینکه پردازشگر درستی داشته باشید که به شما اجازه دهد تا آن اطلاعات را به صورت اثر بخشی به کار ببندید فلسفه شما نگرشهایتان را به وجود می‌آورد نگرش های شما اقداماتتان را ایجاد می کنند. اقدامات شما نتایجتان را به وجود میآورند و نتایج شما نیز زندگیتان را رقم میزند. افراد موفق در مسیرشان به سوی موفقیت بارها شکست میخورند. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش میآید. برتری خفیف اولین عنصر است پردازشگری است که به آن نیاز دارید تا همه دانسته هایتان مؤثر واقع شوند